جنسی ی یازده هم خیلیwie داردی بس ریعا اینو challenge from invers کا capacity می گذرد ورقا کنیم. دقیقی الفارس و obedient را نهار دقیقی دین این خصوصیت را دارند, خصوصیت را دارند اگر بعد از آنها اگر بعد از آنها فعل متارق با ان ناسب آیت به همه به همه مستر, مستر ارتفاع کرده ارتفاع کرده و چیز دیگر لازم و چیز دیگر لازم و و این گونه عبارت ماننده اصا انیقوم زیدن اصا انیقوم زیدن به دو شکل به دو شکل نزد نخلیدین به دو شکل نزد نخلیدین تکیف یک اصاب فعل است، اصاب فعل تامنه اصاب به معنای غربه با خواهد به معنای غربه ان و من و وا این این این یعنی, دیاموزیدن یعنی دیاموزیدن محلن و فائل اساس و فائل و نیاز به هیچ چیز دیگر و نیاز به هیچ چیز دیگر هی یک تکیم که ازها شد تاو به انیفو مزایدان شد چی؟ باین نگهشتید انیفو مزایدان چی؟ مستر معاقل چی؟ نگهشتی؟ بایندان زیدان محلن مردود ببینم انیفو مزایدان محلن مردود باینه وفاین اصلا دو، ترکیب دو درکیب دو اصال ناقصه هست اصال ناقصه هست و تامه ندارد نظر دکنه و تامه ندارد بلی در این صورت بلی در این صورت اصالی ناقص اصالی ناقص به مستر محبت عنی اومه به مستر ان انیقومه را داده است محلن به عنوان اسم به عنوان اسم و به همین مسدر محول اکتفاق می کنن. و به همین مستر محول اکتفاق می کنن. و دیگر نیاز به خبر و خبر پس میشه اصال فعل ناغذ این یعوم زیدون محلن مرفوع سلام بگم این یعوم اسم اصال و دیگر نیازه خبر هم نداره است چند خبریست <تصفيق> چنده <تصفيق> این دو نظر عصا به انیابون و زیدون اکتفا کرده حالا یا به عنوان فائل یا به عنوان عزم و دینیاز هست حالا من عبارت شیخ را می کنم. شما ببینید که شیخ از جز دسته اول است یا دسته میگه یختص و عصا مختص می شود عصا. و آوشکر آوشکر آن این همه چون هر دو برای رجال هستند. به استقنائه ما مختص میشن به مستغنی شدن این دوتا از خبر یعنی دیگه نیازه به خبر ندارن در کجا؟ در مانند اصا انیقومه زیدون اصا انیقومه زیدون حالا شما به که این نظر شیخ مطابقه فتوای اوله یا دو دوبون پس شیخ از اینهاییه که حساب تامنه قبول میگه ناقص است در این صورت ولی به انیقوم زیدون اکتفا کرده و دیگه نیاز به خبر این یک نظر حالا آشیه دوبون اگر گفتیم اگر گفتیم زیدون اصا ان یقوم هم اگر مثال رو اینطور طور کنید که زندون اصا ان یقوم هم با در نظر گرفتن مطلب بالا با در نظر گرفتن مطلب بالا این عبارت دو گونه تحجیب می کندن. این عبارت دو گونه تجزیه می‌کرده یک تجزیه اول زید مبتدا اعراب به ناقص ضمیر غای در آن اسمش که بر گرده به زید ضمیر غای مستتر در آن اسمش که برمی‌گرده به و رابطه خبره به ذرا جمله خبر است به ان یگوم ما. مستر موعدا خبره اسا. ان خبره اسا. و کل جمله اسا ان یگوم با اسم و خبر و غیره خبر کیه؟ خبر زید این تفکیب افرد هیچ کونه نقصی بگیرد دوش زید مبتدا اصافه به ناقص زمیر و قوه قائل این یقومه هنه مستریه و یقومه قیل و قائل این جمله مستر محفر خبر اصاف اصافه ان یقومه خبر زید این تفکیب افرد تمام شده تفکیب دوبان میگیم زید مقتدام به اصاب اکتفای به چلو بکنه؟ مستر معاول ما بعد خود اصاب اکتفای به مستر معاول ما بعد خود کنن و در روز زنیری نباشد در اشتیه نیست حال مستر ما او یا این باشد و عصار همه یا اسم زن باشد. اینی ماست در مطلب این باشد و عصار مستقیم است خبر. و عصار مستقیم است و جمله ی عصارانی چومه و علاییها. اینی بنا بر هر دو فرض. جمله ی عصارانی چومه خبره. سه مرابطش هم زمیر داخل یفون ما یه زمیر توی یفون ما هست که برمیگرده به زیر در صورت اول یه زمین تو اصلا بود برمیاشت به زیر رابط خبر بود الان زمین داخله یفون ما این هم تحکیل چیچی؟ دوه. حالا دقت کنید اگر گفتیم از زیدان اگر گفتیم از زیدان برای تحکیب اول برابر بگیم نه دونبالشو چجور دیگه؟ آه اصر ما برای تحکیب اول اما برابر تحکیب دوبار بگیم چیم؟ ان یقوم ها اصا ان یقوم ها یه دیگه اصا توش فیلی نبوده زمیری نبوده که دو با دست می آجن یقوم بله یقوم ها زمیری پس حالا اگر باشه هم هم دون برابر تحجیب افر میشه چی؟ اصف ان حقوم برابر تحجیب دون دون اصف ان تغییری مشخص حالا اگر اینه گرفتید عبارت و خود ده. اگر جناب گفتی زیدون عصا برای برای تو دو بونه است تو دو بحث برای جایزه اعمالو ها فی زمی رزه ها ما میخورد عمل بدی عصا را در زمی رزه فما بعدها, بعدها خبرو و ما بعد چی؟ قرار اصال یعنی احیف اومد شد؟ فرار اصال زمین ازده هم بشه چی؟ ترکیب در زمین و ما بعد اصال فرارش بشه این یه ترکیب ترکیب و تفریقه ها اند اصال. به اصال انده به زمین تفریق با قاف یعنی چی؟ جدا کردن نه؟ یعنی تفریق امداخته یعنی برد امداخته یعنی جدایی امداخته تفریقها یعنی جدا کردن اصار را از زمیر زمیر جدا شدید بگیم زمیر دیگه تو اصار بس. ولی به نظر من شیخ تفریقها با قاف نگوده بلکه تفریق و ها واقع این گفته تفریق یعنی چی؟ یعنی خاری کردن یعنی و جایز از خاری کنید حسارو از, از زمیر زید بناهن اون میشه ولی تفریق یعنی چی؟ یعنی فارق باشد از زمیر یعنی اون زمیر داخل شکم او و تفریق و ها هن. و خاری کردن از رو از زمین زید خب پس مابردش میشه؟ تما بعدها اسمون مابردش همین یک گونه اسم اسمی, اسمی که مغنه نهنه خبر دیگه نیازه به خبر نداری بی نیاز کنده از خبر چون این از اون آدن آقایونیه که میگه چی؟ میگه حسا همیشه نابسه، میگه مابردش بشه اسمی که مغنه از خبره از نظر یه عده دیگه میشه چی؟ باید بی اصلا خبر رازه؟ م میگیم خود اثر این که پیدا میشه؟ میگه در مفرد مثل زیدون اصان یه هومه هر دو چیه؟ جایزه یه جودنی هست اما اگه تصمیه بشن یه یا باید این گولو بگیریم یا اون گولو و یه از هر اثر و زالک، یعنی ظالکت ترکیب و ظاهر میشه اثر این ترکیبی که گفتیم به ترمیسه در موقعی که اسم قبل مهنس بشه و تصمیت موقعی که تصمیه بشه و جمع بست شد. فعال اول تسته به نظر اول میگی چی؟ هندون اصد انتقومه چون همون داخل, زمیره داخل اصد یه زمیر یه هست و یادتونه گفتیم اگه فائل زمیر ما انتقومه بشه باید ذرا باطا بود حالا چه برگرده به حقیقی؟ چه برگرده به؟ هندون اصد انتقومه و زیدان اصل یا غلط میشته که تابونه اصا یا ان یقوم ما و زیدونه ان یقوم و الاس ثانی و بنابرای قول دوبار میگیم چی؟ اصاف الجمیر در همه یقوقاتش میشه اصاف چون زمین دیگه نداره که تصمیه ما جمع پستش این عبارت تصمیه تمام شد اون بیاده هم آشیه بهتون دادم هم عبارت رو با آشیه که دادم دادن تطریق کردن یعنی دوگل و دوگل کاری شده مرفوعات تموم شد مایرد و منصوبن لاقعی رو اسمهای هستن که فقط منصوب میان و غیر منصوب خوندی میان رو مخلوبه مخلوبه مخلوبه همین ها در ادایه مایرد و منصوبن لاقع و خبه سمانیتون و این مایرد خبه میخوره به مایرد و این مایرد و منصوبن لاقع سمانیتون چند تا هستن؟ یعنی سمانیت و اقصان. هشت قسم ال اول یعنی ال قسمون اول قسم اول اول اول اولو بکن مفهولون به بیگوش کنیم و بکنیم وقوه الفوزله کنیم مفهولون به اونیه که فوزله است یعنی رکن کلام یعنی مصند یا مصندان اله بگی پس اگر یه موقع مفهولون به نایفاید شد دیگه بهش مفهولون به نمیگه چون فوزله نیست در اون موقع میشه رکنه کلام میشه مصنعöß رئید پس خوزله یعنی چی؟ یعنی رکنه کلام نیست رکنه کلامون بودمه؟ مصنع؟ مصنع با این قید الفوزلتو رو ما خواهل رو هنس کردیم ناال خواهل رو همچیه هست اما خوزله زیاده خب مفغول الله هم خوزله است مفغول الله هم خوزله است مفغول الله هم خوزله است نه الان خوزله آه نه, نه الان خ میگه فوزله ایست که الواقع و علیه ال فعل فوزله ایست که واقع و علیه فعل فعل بر شده واقع شده واقعه همه فالمشن معقولون در فعلیدی که به خاطر او امجام شده معقولون فعلید فعلیدی اسمی ایست که فعل در او واقع شده. هلا زمان یار هیچ کدوم فوزله که فعل بر او واقع بشه بگید اونی که برداره مواقع میشه فقط با بقید چیه؟ ها با اونی که همه فضله های دیگر الباقه و علایه در مقبول چیه؟ اصله یعنی چی؟ اینجا؟ یعنی اونی که شایسته است باشد یعنی طبق قانون اینطوریه ممکنه از همان خلاف اصلشن؟ بشه در خلاف آن باید چی داشته بشیم؟ یعنی دلیل داشته مثل اصل در فلان فلان چیز است، اصل در مقتدام مقدم بودنش. نشه بلیه بایی وقت ها چی اونجا واقع املت به سوال میکرد اصل معنا شو به حالی گفت نمیه چی اینجا جا ماین که شایسته هست داشت میگه اصل دیهه اصل در معقولون به ها خورو اگر این اصطلاحاتی که بهتون یاد میدن یاد نگیرید سال آینده اومدنتون دیگه میخورد بعد اصطلاحات و زبان این کلام رو یاد بگیرید حالا شما دارید در واقع سه تا کتاب تکراری می عوامل هدایه سمات دیگه حالا تکراری چقدر تکراری خصوصا با اصطلاحات و مواردش آشنا نشه اگر این اصطلاحات رو یاد نگیرید ما با کسی شروخی ندرید چون ما مستغنی از این است دیاله با قول معروف چیزی بگیم که یا شما مثلا خوشتون بیاد یا بد یعنی دیگه من برام یاد دادن مهمه یاد بگیم و اونطور که چای هم به قول معروف یاد بدید اومدتون زایه نشه اینه که این اصطلاحات رو درش بخیر باشین این عبارت‌ها شما نگاه کنید اون صفحه ما چند خط خوندی 5 خط این صفحه چند خط میکنیم به قول 4 خط رو هم میشه 10 خط ده خط رو دو به اگر ذهنتون قوی باشه زهیبتره سه مردبه زهیبتره پنی مردبه ده مطبعه. ده مردبهش میشه یک سال یه ها دخونی خوب کنه لذا اصطلاحات رو یاد بکنید هیچ علم رو انسان یاد نمیگیره مگر اصطلاحات و زبان اون علم رو بلند باشه اینجا بدونید فعال مفروه اوه اما ارزشی کندی نداره بعدا نمیتونید بیاد کتاب های دیداره این کتاب های امروزی که شما می‌بینید نوشته شده که طرف ساعت بار هم حالا استاد هر دانشگاه هم باشه اینو بخونده باشه بخواد یه یک کتاب از این کتاب یا کتاب های دیگری رو دیگر جسب بگه نمیتونونه وث این که اونها همین او بدن قوانی درستن اصطلاحات و موارد و اون نکات رو ننگفتن ولی اگر کسی بیاد با کتاب‌هایی که با زبان کار سر و کار داره آشنا باشه واقعا هر کتاب دیگری و همقاره. هر کتاب دیگر رو حاله تدریس کنید اینه که این اصطلاحات رو یاد بگیرید وله اصل گفتیم اسطلاحش چیه؟ نه. مایان بریان یکونه داده اصل معنای دیگر هم داره گفتیم بدون تو مرحله‌ای که برسه نگید وله اصل و فیهه تأخر و اصل در مفهول اینه که متأخر باشد مفهول از فیل. یعنی اگر مفهول بعد از فیلومت کسی دیگه علتش رو سؤال نمی آن. اما بغض بعد اما با کاری اوقات میشه که مفعول مقدم میشه بعد این یاکنه و این یاکه است تعین نو عبود این یاکنه این یا, این یا میگه بغض یتقدم یعنی اگر علتش پیدا شد مقدم کن علتش پیدا نشد مقدم نه حالا جوازن برای چی مقدم میکنی باید که هست داشته باشیم. اون کشکی نمیشه میگه لعفاد تله هست بخواهی افاق کردن چی؟ از اختصاص نوز بو زیدن زرفتو معنای زیدن زرفتو یعنی چی؟ یعنی زدن من نونحسر هست در زهن یعنی من غیر زهن رو نزدن. می‌گوا جماعت عبادت یعنی عبادت من عبادت کردن هم منحصر است در تو یا جنبه. یعنی ذی‌ره تو خدا عبادت نمی‌کنه و استعانت و کمک‌خواری من منحصر است در تو و از غیر تو کمک نمی‌کنه اصلاً یعنی مآبت منحصر میشه در ما قبل یعنی زرد من منحصر میشه از اینو یاد هست اختصاص اختصاص پیدا می کنه من به نفاظتن هست نفو زیدن سر. یه معمونی دارن می کل شیء، کل شیء حق و هو حق و هو یعنی شیء حق هو از هر که حق و حصلشی که چی باشه؟ کل خرده حق و هو تحقیل و دلیفی اگر مقدم شد مفیده چی میشه؟ حصر و؟ مخصص این هفت و و میشه اخساس. یعنی اگه نکنیم میشه چی؟ غلط وجوبن میشه که للزومی هی اسبره. به خاطر ملازم بودن اون مفهوم للزو بگیم اون مفهول از صدر صدارت کلام چون مفهوم از اسمایی که داره چیه؟ صدارت مثل اسم استفاد اسم شرط این چیزهایی که دارای صدارت هند. اگر مفهول وارا شدن ماجب هست که چی کارشون کنیم؟ محتم مثل چی؟ نه بود. من رعیت هم باشت شرامات سوال میزید من رعیت هم یعنی چه کسی رو دیدی؟ چه کسی را دید؟ فیل فائل من چیه؟ مفعولشه من محلن منصوب اگر از ما این چرا مقدرم شده؟ میگه چی؟ چون دعای صداوته عدات استفحان ما موقع در او عمل نکنه همیشه اگر مخواد چیزی هم درش عمل کنه باید ما قبلش باشه رعیت با قبلش رعیت من غلط است. من رعیت چرا؟ چون صدار هست خب اینجا اینجا اینجا محلوم نکته توش وجود نداره دیگه هست رو اینها نیست چرا؟ چون وجود داره که مقدم میشه اونم باقتر یک قانون لفظی مقدم شده اون قانون لفظی کدومه؟ این که من دارای صدار ثانی مفعول المطلق از ثانی المفعول المطلق به آمن هست در و, و مطلق وارف هست از مستر یا اکد و قسم اولش تحکید میکنه آمند رو او یا با یه نو عوامل خودش رو بیان میکنه نو عوامل خودش رو بیان او عدد او یا عددش رو بیان میکنه مطلق چند قسم؟ صفر قسم اگه یه قسم دیگر بود مثل سرگین و رعیت یه وقتی بهش مفهول و مطلعه با با. نه بود زرب تو زربن تو این مفهول و چیه؟ تحکیدی زرب تو بیره زرب پاره زربن مفهول و مطلعه دو مرسا که گفتیم زرب تو زرب ایچ برگی زرب تو این مفعول و مطلقه نوعیه زدن مانند زدنه زرب تو زربت ها اینه زدن دو تا زربه مفعول و مطلقه درست میگه مفعول مطلق مطلقه تحکیدی همیشه مفرده یعنی هیچ موقع نبیتونیم زرب رو جمع بردیم بگیم ازراب یا از یا زروب بگیر و تو از و زرت تو از رومند زرت تو ضرورند و, و متلق تحکیدی همیشه چیه؟ مفرد ول و مفرد و دارمند مقرول و متلق از دارمند هیچ وقت به شکل تصنیه یا جمع آورده مقرول و متلق عددی خب معلومه باید تصنیه و جمع بسته بشه اگه تصنیه و جمع بسته نشد چیه؟ عدد معلوم نمیشه گهریه که ولی عادیه، غیر و مطلق نده دارم عددیه چون مطلق نیست همیشه بلکه تصمیه هم داره جمع ولی محکده ما کادم حالا مفهول مطلق نوعی تو. میگه دفع نوع خلاف رو در مفهول مطلق نوعی خلاف است. یعنی بعضی ها گفتن مطلق نوعی میتونه تصمیه رو جمع بسته شه؟ درزه گفتن مفلومتنوعی قابل تسلیم و جمع مشخصه مثلا من بگم زرب تو زربت هی الامیره زرب تو زربت هی الامیره یعنی چی؟ یعنی زدم مادم دو تا زبنه عمیر. یعنی در واقع این الان هم عدده رو بیان میکنه هم نوعهش رو بیان میکنه آه؟ یعنی در واقع ما مفهول مطلع نوعی اگه حسابش بکنیم میگیم تصمیه و جمع بسته شده روزی نیست اگه بگیم مفهول مطلعه چیه نوعیه حالا تصمیه بسته شده یا نشده زربت و زربات هسته امیر زدن مثل زدنهایه مثل زربات همیر اگر نبودیم، کی کیو به مقبول مطلق نظریه مقبول مطلق چیه آواطیه دیگه مقبول مطلق نظریه حسابش بالکل آره یار یار یادتان معلوم نمیکنه این مقبول مطلق با صورتی که تأکیدی باشه پس و نباید در صورت عددی دارد. با صورت نظری خلاف ادعی قبولش کرده به عنوان مقبول مطلق نظریه و شده. گفتن پس نیوجان بس شده ادعی گفتن نه خیر عددی و نوعی نیست نوعی تسنیوجان ندارد علایه ها ضربت هیل امیر چیه؟ از نظر تحکیبی مفهول مطلق حالا آره مفهول مطلق از چه نوعی؟ از نوع نوعیش خب دسمی و از نوع عددیش دیگه نوعیه دسمی و جمع ندارد درست حالا آره چند جا هستش که آمل مفهول مطلق عاما حذف میشه کمی تو ایرایه و یجو حذف و عامل هیچی که جان مفعول باقی می شه میاله و واجب است حذف عامل مفعول مطلق صباان یعنی ما میتونیم چیزای دیگر رو برش کار کنیم، ریاض کنیم. عرب فقط در سغین گفته، رهن گفته، شکرا گفته. دیگه ما میتونیم همدا رو هم براش کار کنیم، ریاض کنیم. یا مثلا زردان رو هم همون چنده ای که عرب یا فیلش رو به کار میداره یا مسترش رو با منفول مدار همون هست. دیگه غیر اونها جایز این که بیگه ای آملش واجب هست بشه اونجا گفتم برای دویم <تصفح> نه نه سران کلاب و چه رو امکان نداره بگیم سران کلاب و امکان نداره اگر مستر اومد باید فیلش هست. این مفتر جانشین بک می میشه سمایی رعیت با حضب آنگلی سمایم فی نهر سرین و رعیم یعنی رعاک الله خدا رعایتت کنه حالا یه نماز مثلا کاری برای ما کرد و ما رو به حال معروف وایه نکرد رعایت حالمون کرد میگیم رعیم رعیم یعنی چی؟ یعنی رعاک الله یادش میگیم رعاک یعنی خدا همتون کنه یادش میگیم چی؟ رعن اما الله بله رعن دونا با هم گفته چون این باید هست به اونجا یه مثال دیگه هم زد رو؟ شکرن آه. و قیاسن چون میگه فی نهده در مانند اینها یعنی این دوتا باقر نیست شکرن هم هست ممکنه به دیگر هم باشه و قیاسن اما قیاسن یعنی چی؟ یعنی منحصره به این مثال هایی که میزنیم بگی هر مثالی که مارند به این ها باشه شما میتونید چیکار کنید مستر بیارید و واجه بر اون موقعا چیکار کنید فعلش رو از بیارید و واجه بدن اون موقع فعلش رو ازم. و قیاسا دی نهره فشد دو الوساقا فا منن وعدا و اما لدا هن. و شد دلوه اما من من و اما یکی از جاهایی که یکی از جاهایی که واجب حضب دلی که ناصب مقولون مطلبه است که مبئولون مطلب واقع شود تفصیل دهنده و توضیح دهنده تبسیل دهنده و توضیح دهنده بعد از یک کلامی که مبهم است تفسیر در این و مطلق، و و توضیح در این مقبول و مطلق، از اما می شود اما فهمیده می شود که حرف عطفیست که مفیده حرف که مفید تفسیر و توزیه مقابل خود است، مقابل خود است. نه سه، فشود دو آل اما منن بعدو، فا اما منن بعدو، و اما دیدار، و اما دیدار و اما تقدیر عبارات چنین است تقدیر عبارات چنین است اشوب تو الحساب اشوب تو الحساب با اِما هم نون منن با اِما هم نون منن بعد از شبد بعد شد دلوستا بسا و اما فداعن و اما پفدونن و اما و اما پس اون دوتا که حصوله بود ماست و توفدونن مسترهای منن و فداعن جاونها نشستی بعد از چی بعد از این معن دارد چون خوب بعضو هم که معنی بسازم نه به خاطر چی معنی بسازم شده؟ تقاضی اینه که مصادف لهش افتاده که شب ذل و ثاله لفظش در نیت نیست معناش در نیت این رو که من بپر بستم باشه معنی بسازم ولی بعد سر فقط به بده نه شدو به عمله حالا میگام کنید شدو به یعنی محکم کردن شد دریا شد تو به لحمر شده شده شده شده شده محکم کنید به لحمر وفانه سلام کنید علوه ساقه هم برای یعنی چی؟ به مسلم میگه پس محکم کنید وسیقه ها رو یعنی بنده رو که باش اوسره رو او سرها رو بندهاشون رو محکم ببندید هرکی رو در جنگ رو در حسیل از دشمن مقارد گرفتید خب چه رو کنید؟ سر ببندیش و تو علوه خب این الان مبهنه این جمله که محکم ببندید از ایران رو, رو بندهاشونه این مبهنه چرا بابنه؟ خب حالا محکم بستیم چه ها چون این دو تا مستری که بعد میاد یعنی دو جمله تفصیل و توضیح میدن آقابت این بستن مکنه این جمله این جمله بستن بندهای اسیران مجمله است و عبارت بعد آقابت و تفصیل این جمعه مجموعه است یعنی آقربت بستن از ایران و این است که یا منت میگذارید برای و اونها چه میکنید آزار ده. یا نه فیدیه از اونها فیدیه از اونها و میکنید میگه ها اگر دیدید اصرا تمایل به اسلام پیدا کردن آه؟ و دشمن هم بسیار چیه ضعیب شده نمی طلاق شما لطف میدارم اونها بکنید و اونها هم مال و منال و چیز درست حسابی هم ندارن آزادشون کنید برن خودشون فکر میکنن و به اسلام رو کرد همون نون من نزد اگر دیدید ما دید شما ضعیبید قسارات زیادی بهتون رسیده و دشمن دشمنه صرفتمندیه و در کفر خودش هم استوار شما برای تقریبیت بنیه خودتون از اونها چه کنید؟ قیدیه بگیرید دشمن آنتون از رو آزاد کنید درند اون این خب این الان آقابت اون شب و بسار رو نشون داد یا نه؟ آه؟ این الان است که به حال معروف شما دیدید حالا ممکن مثل این عبارتی برای شما پیش بیاد شما هم باید ا مشخصه، عبارتش رو داشته باشید و عظم مثل که مثلا من بگم در اون دروزه کن رو درس ها توی درس این با در چی بشه؟ این بشه و اما, اما نجاهن و اما نجاهن و اما بعد می بخارید درستاتون رو عقابت بشینه ما اما تنجهون یا که قبول میشید قبول شدنیم یا عقابت نهایت کنون در که قبول میشید یا اگر امتحانی هم نواشد و بحث قبولی نشه، و چیه؟ یا تتعلمون و تعلوم هم یاد میکنید یاد گرفتن علایه ها و ذره این همونه و در مثال های ماننده او چه میکنن؟ حسب برامر این قشد دلوی سا و اما من نم و اما دهار نجته این که اینه اون جمله تمانونمنن و جمله تفتر و فدا که به او عطب شده این دوتا جمله محلن منصوبن و حال هستن از